چرا نمودی پیش می دهن؟ یه همچین موجی ایجاد شده. کمبود ایدئولوژی، بنبست ایدئولوژیکی. هیچ دیگه هیچ هیچ هیچ چیزی به ذهن دنیای مردم دنیای نمی‌رسه که چه جوری حکومت بچرخونیم. دیگه میگفتن لیبرالیسم دیگه. دیگه با لیبرال دموکراسی ما دنیا رو میتونیم بچرخونیم که شکست خورد در آمریکا. میگن خب چیکار کنیم؟ اخیراً این کتابای اشور رو دوباره دارن باب میکنن که بگن دوباره برگردیم بر بر بر بر به کمونیسم. خب که 80 سال کمونیسم امتحان شد و جواب پس نداد. خب چیکار بکنیم آقا موندن دنبالی, دنبالی خسته شدن مردم دنیا دارن میبینن یه 1.99 درصد مردم دنیا داره میچوبه روز به روز جنگ داره بیشتر میشه آقا بشر گفت خودم میتونم مدیر خودم باشم امام زمان نمیخواهم خدا هم فرمود اگر تو عجله نداری من هم عجله ندارم فنتظرو انی ماعکوم منال منتظرین من, من منتظر میشینم تو zarar میکنی حالا بشر ببین ما الان تو دنیا کمد قضا نداریم انامو رو پلیزمی کمبود غذا نداره آمریکا اضافه گنده میشه میره توی اقیانوس برای اینکه مردم سودان توپی نده پروفسور دکاستو تو کتابش میگه اگر ادرار مردم غرب رو بدید به مردم آفریقا سود تغذیه نجات بده میکنه اگر الگوی تولید غذای هلند رو به بقیه دنیا بدهیم میتوان 30 تا 45 میلیارد نفر را غذا داد خب دنیا مدیر نداره مدیریت شده چی توتالیتر مدیریت دنیا شده پرگمتیستی مدیریت دنیا شده سود محور اصالت سو سوریوتوریتاریانیزم میگه هر کس برای خودش پول جمع کنه همه چی شده منافع شخصی در داخل حتی منافع امیلی کشورها منافع شخصی باز ظهوره بیداد میکنه شرکت های چند ملیتی خیر مردم دنیا رو گرفتن مردم به اینجاشون رسیده میگن بحثه دیگه خدا بفرستون. اشتباه کردیم این همون فراز دایی نوتوست اینل حسن و اینل اینل ای داد این اون امام خوبه رو داشتیم 50 درصد ماجرا هم ما نه آماده بودیم اشتباه کردیم یه جهتی هم نیاز به گریزنازی داره یه علم معین کسی پایه است با همش میگر کنیم این اون بحث است ظهوره یعنی رسیدن به این نکته که اشتباه کردیم پسش می‌پاس قول می‌دیم پاش بفر پست این یعنی اتفاق داره میفته رشد اسلام تو کشورهای غربی عجیب قریبه عجیب غریب. در برخی از کشورها رشد رو اسلام نسبت به بقیه نیست برابره یعنی 20 برابر بیشتر مسلمان میشن میگه در 11 روز بعد از 11 سپتامبر چقدر در 11 روز بعد از 11 سپتامبر به اندازه 11 سال مردم میکونن مسلمان شد گفتن بریم ببینیم مسلمان کجا کتابش رو گفته برید آدم بکشید میوهم قرآن میخوندن عجب مفاهی می داره ادو سبب خیر خدا خواهد. خدا شکر بس پس وقتی تو این دوره از تاریخ مایه رشد مزاعد و تساعدی نسبت به اسلام و رسیدن به موضوع مهدلی این اون... از نشان های نشان های خودش از نشانهای زوره. همین مسئله بابک و نشانه اصلی ظهور خودش به نظره مثلا همینجاست شما فهمودید قرب به خاطر خلق ایدئولوژیکی، انها مردم دارن به سمت اسلام و به سمت ظهور دارن سو پیداده میشه حالا اگر که این مسئله مثل مسائل قبلی ظهور به تاخیر بیفته آیا این باز هم ضربه نمی به خود اسلام باشه که مردم بفهمن که ما امیدمون به یک فروزنه‌ای بود به نام اسلام و مهدویت این هم که مثل سایر ایدئولوژی‌ها تهیش دل در بله ببین عرض بکنم خدمتون اولا این شما اسلام مهدویت رو خیلی مساوی هم دیدید کسی که میگه مسلمون میشن الزاماً به خاطر مهدویت نمی مسلمان بشن به خاطر ایدئولوژی نا به اسلام در مدیریت دنیا خب اون طرف داره میبینه بابا قرب و جنس بازی گرفته تو فرانسه رسما قانونش تصویب شده رئیس جمهور پشت سرش بایست ده. این میفهمه میگه ای بابا این کار یعنی خانواده نباشه خانواده نباشه یعنی ما همگیار باید بخوریم خب این میفهمه بعد میبینه اسلام جنین بحثو گرفته بعد اسلام مسیحیت هم نیستش که بگی میل جنسی حرامه. میرے جنسی نجسه زن موجودی شہوت و, و خبیثه میبینه عجب اینجا میرے جنسی دور از اون طرف مثلا مسیحیت نیستش که بگه آقا اگ یکی زشت تو گوشت این طرف تو گوشتم باید بگیری میگه نه به حقوق کسی تجاوز نکنم یکی ز بس دست زد از حق خود دفاع کن میگه این چقدر معقوله یعنی با عقل داره به اقل که از دین عقب مانده بود رفت همه بازیگوشی های خودشو کرد داره برگشته داره میده این یه نکته اما در عین این طرف اگر کسی قراره ببینید امام زمان رو فقط با این عنوان بخواد یعنی ببین امام شؤون مختلف داره خب اصلا خدا فکر کنید موفتی امام زمان رو میده منجیشو به هرکس مفتی هر میده هر می اصلا خود خدا فتنه میکنه یعنی مثال قشنگی داره قرآن حضرت موسی عجله کرد از سروق اومد به دیدار اومد به آدگاه از بنی اسرائیلم جلو افتاد بعد خدا فهمید موقع ما, ما عجله کرد یا موسی همچین چیزیه میگه چرا عجله داری چه خبره قوم جلو افتادی کو خود خاطر اشلیاقم فلان کو کجا بابا و ازلله و سامری سامری پدر همهشون رو در بود فتنه کرد همه رو به گوشه لبرسیشون حضرت موسی خوشگیش میزنه بعد توی آیه دیگه خودش چه میفهمه میگه ناغامک ما مفت میکاری یعنی فتنه, فتنه سامری رو به کی نسبت میده به خودش یعنی سامری شرایطی به وجود میاره که خدا هم از خودش رو بگیره آدمی که امام میخواد فقط عبادش آدمی که امام میخواهد صرف فقط من از, ها، من از امام امامت فقط این بخش نقطه اون رو بخواد این آدم باید رذوذه بشه این باید از تو این قربان در تو کربلن نہ تو بلبلون نہ باید بریزه اینا اون نابو که اماممون میخوان بر امام بودنش امامو میخوان که فقط بهشون بگه بمیر بمیرن بگه بشین بنشین بگه پاشو باشن چرا چون میگن حرف تو حرف بیچونه چرا خدا روی زمین هست. تو خلیفت الله علی الارض هستی ما میخوام حرف خدا رو مستقیم بشنبیم میخوایم از کلام رو بشنبیم اینا بله یه نفر هستش که آقا میگم یه زمانه مقلا دلی زفت شد یک بحث زبوری گرفت اصلا عجیب غریب قبل اصلا چرا شما اینه میگی محمد نفس زکیه محمد ابن حسن محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ادعا که من مهدیم از بن الحسن بود همزمان با آقا تا کشتنش آدم خوبی هم نبود ها چون جلو معذبیات جلو آ... امامت امام صادق دو کندسرو درست کرد این نکته جالب روایت داره امام محمد باقر به امصاد فرمود تو هم میتونی قائم باشی این اینا زدن خراب کردن دیگه بنی فاطمه ها ها حسادت دارن که چرا خدا امامت به بن الحسین بده به بن الحسین نداد همه بنی حسن اینجوری نیستن ها سید عبدالعظیم حسنی. رحمت الله بنی حسن اینو بدن. کشته شد گفتن چیکارش کنیم؟ گفتن آها داداشش مهدیه این نفس زکیه بوده که از نشانه های پنج تا اصلی ظهور کشته شدن نفس ذکی هست دیگه خب یه نفس پاک انسان شریفی که به ناحق کشته میشه. بعد گفتن اینو یعنی شروع کردن بازی کردن ببین چی داشتن این رو داشتن خب اما امامو میخایم خودمون آماده میکنیم یکی از دلایل اصلی نیامدن امام هم گناهان ماست. یعنی ما خود مانع ظهوریم. حالا این گناهارو میایم ترک می کنیم حضرت اگر ظهور جمعی نداشته باشد بر من نوعی ظهور خواهد کرد آقا نبودن کسایی که با آقا خدمت مشرف شدن خدمت آقا امام زمان حالا فارغ از بحث تحلیلی محتوای دینی و سیاسی میخوام یکم وارد جزئیات بشیم فضای کونی منطقه چیزی که قابل لمسه یعنی مردم وقتی که پیگیری میکنن اخبار رو مشاهده میکنن این فضاها رو خفته پیش بود روزنامه این دلیمیل بریتانیا یه به نقل از خود منابع سعودی که ملک عبدالله دوشار مرگ مغزی شده و دیگه عملا ایشون مرده خب بلی خب برداشت، این خبر رو برداشت این مسئله الان توی عربستان وجود داره از اون طرف قضیه سوریه احادیث متواتری وجود داره که توی منطقه شامات درگیری به وقوع میپیمنده و این درگیری و تحولات و زبور وجود داره این دوتا منطقه خیلی حساسه یکی منطقه شکل جزیه عربستان رو به خصوص یمن و عربستان و بس منطقه شامال اردن و سوریه این رو میخواستن موشکافانه بردسی با تحلیل بود توی ما سوریه تحلیل بهترین تحلیل های CIA روی دو ماه بود یعنی این تحلیل که خود امیر قطر اومد به مسئولی جمهوری اسلامیان گفت گفتش که و پشت سوریه بیات کنار که سوریه دومو بیشتر دوام نمیاره در عوضش بحرین مال شما بحرین مال شما سوریه مال ما این فکر بی... اینا اصلا مشکلشون همینه دیگه اینا فکر میکنن در مورد سرنوشت انسانها میشه مثل خلیل فروش دیگه دو... کیلو سیب زمینی اینجوری راحت تصمیمیره که پاسخ دندان شکنه و جمهوری اسلامی گرفت رفت الان بالا دو سالام رد شده سوریه الان رو به سمت یعنی قدرت گرفتن نظام وشا رسده یعنی کاملا برگشته که شما میرید اینا الان اخیران راضی شدن که بیاییم مذاکره کنیم نمیدونم این بحثا رو کار حتی به سطلاح شیمیایی همینه کشوندن من نتونستن نتیجه بگیرن که البته من بحث شیمیایی رو خاتم دار نمیدونم و خدمت شما ارز کنم توی تحلیلی که در ویبلاگ هم گذاشتم سایت ها زدن در جریان بازی های اولمپیک. من پیش بینیم این بود که تو همون بازی ها یک بوم منفجر بشه سلاح شیمیایی باشه بگن که اینا کار سوریه هاست و ها به بحانه به سوریه حمله بشه اون تا ولید معلم در یک کنفرانس خبری گفتش که ما اگر سلاح شیمیایی هم داشته باشیم علیه این مردم خودمون استفاده نمیکنیم. یعنی بهش فهمون که اگر بخواد به این فضا کشنده بشید ما اسرائیل می زنیم این باعث شد که اینا دست از این نقشه‌شون بکشن اما همون پروژه‌رو چیکار کردن سلای کشور جمعی رو ادامه دادن چون بحث هسته‌ای اصلا به هیچ جور به در باب سوریه نمی‌چسبه چون نداره خب خدمت شما عرض بکنم که اینا بحث شیمیل پس من کماکان میگم هنوز بله پروانش مفتوحه بازم ممکنه اینا فتنه بکنن یا مثلا حمله زیادی بزرگ انجام بدن نموده سازمان ملل هم مجبور شدن اعلام کنن که این کار شورشیانه بوده اما الان گذشته الان ارتش دان منطقه‌ای القصایریه القسیر واهن کمر اینا رو میشکنه اگر اینا رو دور بزنه و راهشونو ببنده اینا دیگه تمومن خب اینام خودشون خوب میدونم پس مجرد سوریه داره به سود ما پیش میره اردن در سکوت مصلق رادیوی قرار داره و متاسفانه تبدید شده به محل دیدارهای امنیتیه نمان امنیت عربستان، ترکیه، قطر، اسرائیل اینا میرن تو اردن با هم قرار مدار دارن. چند تا مانور قرار برگزار بکنه اردن. ها وارد اردن شده اما مانور برگزار نشده قرار با همکاری 17 کشور یک تو منطقه برگزار بشه. ها وارد شد اما خدمت شما عرض بشم که مانور برگزار نشد یعنی این ها کجا سلاح یعنی در اختیار ارتش اردن قرار گرفته. بخاطر هم رو اردن هم باید زیاد باشه. چون فرمودید مهاجره لبنان بنابرای اینوی که سلافی ها داستان رو به لبنان بکشن و در شهر از سیدا شما دیدین شیخ فتنه این سلافیه احمد الاسیر, الاسیر احسان فدمت شما از کنند راه سیدا رو از کشتاری انجام داد یعنی اینا میخوان به اون سمت بکشونه بارها گفتن, گفتن. اول سلافی همانشون رسان گفته ما اول میریم سوریا که حال کردیم میریم به سمت لبنان از لبنان میریم به سمت عراق بعد از عراق هم الان روزان این درگیری شد نه هست مولانا این که از همون روز طبیعی وجود داره فتنشه‌ی اسنی رو قد خوب تشکیل داده. که باید زنده بکنه که اینجا یهود جون سالم بده ببره. قرآن خیلی قشنگ می‌فرمه لا تجدن اشدنا از داوته للذین آمنا الیاود الذین اشرکوا. میگه دشمنتنی شما اینا. بعد تو ولایت هم میگه یه وقت نری زیر بیلیت این اهل کتاب خیلی واضح گفته خدا این یعنی اصلا هم نمیخواد ترجمه آیه است فلز اون دنیا دونه دونه با همین آیه بعد مهاجر مورد مهاجر قرار بگیرن خب دشمن خوب فهمیده قران همونطوری که میگه یهودیان دشمنان شما منظور یهودیان اون توی قران صهیونیست امروز میشن چون قران میینه بنی اسرائیل یهود تفاوت قائل بوده این صهیونیست دشمن شما میگه همونقدر مسیحی ها دوست شما هستند صهیونیست اینو فهمیدن دارن مسیحی ها رو میارن تو خودشون تا به منم دشمن موسا منم الان قول به شما میدم یه روزی این ایونجلیسمو بیام اینجا پیش شمارش در واقع باز بکنیم این شبههات ذهنی برطرف بشه که در مورد ایونجلیسم و این مسیحیت سنی وجود داره ماجرا لبنان اینا سالهاس دارن روی این بحث کار میکنن از زمان جریان 14 چار، مارس که سعد سعد الحریری پسر رفیق, ال ح... رفیق خدمت شما عرض میکنم اینا اومدن چیکار کردن اینا بحث شیعه سنی مطرح کردن خب منته با انصافن به معنی واقعی کلمه با هوشیاری سید حسن نصرالله و سکوت مظلومای شیعه فحش میخورد گفت هیچ نمی‌گید. کشته می‌شد، گفت هیچ نمی‌گید. توهین می‌شنید، گفت هیچ نمی‌گید. اینم درسته ها. اینم درسته. تو عراق هم فتنه کردن. یعنی الان همین الان فتنه سلفیایی یعنی میخوان به استان الانبار عراق بکشونن. چهو میده عزت ابراهیم الدوری اومد بیانیه داد. این هم دارن میکشونم باز شما میینه آیت الله سیستانی میفرماد اهل سنت انفسنا انفسنا اهل السنه میگه جانمان برادران اهل سنتتون خب اینجا باز شیعه داره چیکار میکنه مدیریت میکنه مرجعیت شیعه هست برای همین عرض کردم که اینو دارن مرجعیت شی رو میزنم یکی از همین کسایی که ادعای سید حسنی بودن کرده در عراق فرغی تریسمه آصارخی با صات نوشته میشه این فرد خیلی جالبه یه شب شده الله بعد میگه که استان الانبار رو ما باید بدیم بره بشار اسد آدم بدیه حکومت نوری مالکی باید سری متلاشی بشه بعد آیت الله سیستانی و خدمت شما عرض بکنم رهبری شیعی در ایران هم اینا منحرفن شما اینا نگاه بکنید ببینید دقیقا حرفی که سلفی ها دارم میزنم یعنی بعد پرورنده آدم این از اهل سنت استان الانبار که این در دستگاه امنیتی واسط عراق بوده آوردنش به یه روحانیش یک جا یعنی یه فتنی تو کجا؟ بله مرج اساسی همیشه هستش خب باید مراقب باشین قدیم هم بوده